دم مصال الله و در راجه در ما شده شده بود منجر اینجا شده که، بعد از مرحوم شیخ بعد از مکتب بغداد تا حدود 20 تا سال که منتهي میشه به زمان علامه در میان علمای ما خط متکلمین یا خط مقبول در اصطلاح عقلانی عریغرا در شناخت که دینی که این جمله سر یا تفسیر یا کلام اینها بود اینها بجای تمساک به اخبار تمساک به اجماع کردن یعنی اجماع در این دوران مثل چند تا فقیلی که داریم مثل این ایگریز و در کتاب قونیه اینها مثل مرحوم سید منتظر تمساک به اجماع در مقابل خبر کردن اینا منکر حجیه در حبر شدن و در عکس برای اثبات احکام شریعه تمسطه که به اجمال و همون تلقی کرده. امتیاز مثل ابن ادریس و ابن زهره نصف و اینه که ما تقریبا یک کتاب جامعی از سید منطقه در کل در احباب فرق که با این تفکر اجمالی تعلیف کرده باشه اما کتاب سراعه و هرونی با این تفکر شدن. یعنی شدن مضافن که کتاب بانیه مقدمه الی زهره دارای سه بخش از سابق دو بخش شاکیده بود اخیرا سه بخش شاک شده بخش اولش اصول احوال کلامیه بخش دومش اصول فقه و سومش فلسفه سه حرف علم رو به اصطلاح این کتاب داره در کتاب علم الهدیس اولش مقدار اصول فلسفه اصول خیلی هم موجز است می‌خواید هم شرف کلام دیگه نداره امتیاز کتاب ابن عدویس که سر کرده یک دوره فر رو از نهادت تازیار با اشماع تعلیف کنه این خب نفته مصبتیه یعنی مثلا ما سهل محتضا کتاب ناصریاد یاد و کبوله کتاب انتصاب داره اما یاد تقریبا مباردی که این کتابی که به نفته استدلال باشه رسائلی هم داره اما خب اینی که یک دوره فر رو الان یادن نمیارد از من منون اصول دارم کلام هم نظره اشرافی اما فقر رو یک دوره حتی به اجماع و این تفکر تعریف کرده باشه ما در تلمات مرحوم سید مرتضان هستم اما اولین کسی که این کار رو داره که دیگه دوره کامل فر رو با از که به اجماع نرشه مرحوم ابن ادریس در سرائه البته خب ابن ادریس به نظر ما یه بسیار مرد مفهمت فکر و هردیشمند و واقعاً مرد کور اطلاعیست خوشفکر ظاهر در جوانی که تا رو نوشه شاید 20 سال بعد بود پختگی فکری او بیشتر میشد. یک نوع همون اشتالی که در کلمات مثل شیعتم از خدیب عدم انسجام در کتاب هست این طور که تاونش منتجب باشه در کتاب ابن زهره انسجام بیشتر در گنیه ابن زهره و خیلیه صریح دیگه گاهی 6 تا 8 تا 10 تا حتی فرقی رو مرزه میکنه میگه وضعی و علاقه داره که کلیه باید اجماع رو متکرر پیاده دیگه تفریعات و غیره تفریعات و تمام رو با اجماع بیشان حل میکنه مرموم ابن زهر تا زمان علامه در کلمات مرموم محق صاحب شرایط اجماع در حقیقت یک نوع عمل به روایته یعنی که تقریبا سمایل به همون زوار شیف در وقت حکیت خبرم ایشون میگه که هر خبری که عمل به الاصحاب و در یشوز ما بهش عمل میکنه یعنی مسئله که تقریبا داره به خلاف ایشان مرغوم علامه مرغوم علامه در کلمات خودش دیگه بحث اجماع رو زیاد داره محسوسا چون علامه به خلاف این که هایی که ارس مثل مرمول شیخ ترسی یک کتاب در فقه خلاف یا معارن داره استالا هم بشین فقه معارن چراستم عرب ها تلفزون اما که میشین این طرف بازم یا خلاف تذکر. تذکره تذکره ای اللہ میسته خلاف شیخ کتاب تذکره مثل خلاف داره دو دو یک که مثلا تجمه اند اندامه علماءی ما با عنوان رعی شیعه در معای رعی سونی ها میاده یعنی یکی از مناشه دعاوی اجماع در کلمات حلامه رسد کلمات شکل توسی نوشتن کتاب خلافه چون نفت بکنی؟ این گواهش ما خواهیم باید بحث بگم این دعای اجماع در معای علمای ما این که مرحوم کشوره ها هم داره و گیرم کردن این در نقطه پنیش اینه ما اصولا دو جور دعای اجماع داریم یه دفعه صاحب جواهر ففش شیعه نوشته بین علمای شیعه بررسی میکنه یه دفعه نه ما ففش خلاف نرشتیم میخواییم رد شیعه در محاول احناق و مالکیها و شافعیها ها بگیم در که این ادعای اجماع توش تسامح داره مثل ادعای اجماع داخل مذهب نیست. روشن شد یعنی یک دفعه ادعای اجماع این از که مثلا آرخوژی مثال در یک مسئله یک شانست کاری به علیه سلطه هم ندارن مخان اقوال شیعه رو بنویسن ایشون وقتی مخان اقوال شیعه رو نظرشون به دنیای تشریعه یه مخالف هم باشی در قرآن پنجام چارون سبون یا فیلمون ایشون متعرض میشن بله اگر به تعبیر خودشون شون از که مرموحی رو دارن که خیلی هم سهراش در ایشان واضح نیست که به جای اجماع تعبیر مونم به تسالو. تصالح رو مندتان قتی ایشون به اجماع با اون یک حکم با اون حجت فقط اجماع نمیگن به جای اجماع تصالح اصطلاحا تصالح قطعی بین اصحاب در عده مسائل ایشون میگن تصالح اصلا فرض نمیشه قاضی بشه در همین مواردی که ملاحظه رو ایشون ادعای اجماع می... ادعای تصالح قطعی بین الاصحاب بی این به ذهن متصدی کار نشه. و ها در موارد دیگری که که این یک ای نقطه مهم نیست مرمو این بحث رو باز کردن که ما اگر حدیث صحیح باشه قبول بکنیم ولی مخالف مشهور باشه باز خود ایشان در مواردی که این کار میگرفتن الان آن آهال ما دیگه ترموز تا حدیث عمل اما خود ایشان اگر مواردی تک میره شد مظلم هست در بحث تصاویی دیه کافر با مسلمان اشان خب هم می به ازاره که دلاغت برای دیه کافر یه چیزی حضوریه دهم تا یک یعنی هستدر در حال هزار در هم دو تا رقایت به تحبیر هست که سریه هست و دلاغت برین دیه کافر با مسلمان یکیه بعد میفرمان که حضورت بیش بسرلشون سریه است. دو تا به سریه است. لازه اینشون می کنن تسالوم قطعی را از خواب برطر نیم دو داره بارد. خب میگن بهشون یک بازی رو باز کردن چون خودشون فقیق بودن با نکات کار منتظر می شدن. اما خب, خب میدونی که الان باز اخیرا بعد یا به این عنوان که اون رو باید صحیحه به تساویر دیه کافر با یه فرسوازن رو بزرمیست که قانون میشن که الان تو مجلس بودن رو قانون میکنن مثلا معلومه ای خواهم با دو, تر... دو تر یکی اون یکی هر اشکال خبری داره تو پیشونه هر دو سگه یه چیز دیگریه حالا با اون بحثش نمیشم چون خیلی اون بحث لطیفه در این آسانی نیست که بدهی و اون بحث باشه نه آیکوئی میخوان با تساله تحلیل تاریکی نمی‌کنن اون روایت رو دو تا روایت رو تحلیل تاریخی تحلیل که گذاشتیم تحلیل اما با ارتکاز فقیرشون جلوش ایست دادن می این مخالف تسالان و قدید از هم به هر حال از هم پس ما دو جور اجماع در کتب ما آمده و این منشأ خرص شده یکی اجماعاتی در خلاف شیط توسی و تسکره علامه آمده اون بیشتر به عنوان یک مذهب شیعی در مقابل سنیان بگه یکی اجماع فرص در کتاب علامه در مختلف آمده اون آرائه شیعه دو تا باید دو کتاب داره یکی تذکره داره که آرائه شیعه در مقابل سلمی یکی مختلف داره آرا خود شیعه مختلف شیعه به یک شریعه اونجا دیگه به احلسانت کاری نداریشون لذا ارزش اجماعه این دوتا کتاب ترد میکنه یه باش کمان که بسید که از علمای متعشکر ما محرف کردن که عباراتی که مشعره به اجماع هم هست فرق میکنه. راسته این برای اولین ما تقریبا در میانه دفعه شیعه در کلمات شیخ توسی مثلا تو محسود هست تو خلاف هم هست اما تو محسوس هم هست مثلا بعض دفعه میگه به اجماع اصحابه و بعض دهب علما همه ببینیم و از دهب علما این بحث محرش در زهر به علمانه ادعای اجماعی یا نهد؟ ویخی یه باش شباش که جلو میاریم بعد از انلامه باز میبینیم مثلا بلا خلاف این و هود و نمیانیم بلکی این بحثی که محروم شیخ انسالی هست که شیخ در وقت و بحث اجماع یه بحث تو بعد مواسعی این مرادش حساب تشکل غناه هم که واقعا خب کتاب هست خاص اجمان روشه کشف غناه املاک روزیه دل اجمان کتاب عبارت نیست خوش عبارت نیست یا اولاد مفیدیه یک بحثی رو که ایشون مطرح کرده اختلافات در تعبیر از اجمان راست این ما داریم این مطلب قبوله از کدن تحنیل چون کتاب محسوس ولو در سفر است. از از کتاب شافیی گرفته متن کتاب میدونی انان هم شده در ما هم شده یک کتابی رو پرسیم مثلا پرسیم دانشوی از هر برمان فقر شی... رسمی سلمی میمیسه یا آدم شیبی در حاشش آرائه شیعه می اون هم هستی مشکل نداره پرسیم کتاب از تکشیر جنایه الاسلامی مال عبدالفاد روزه ای مرحوم اصل اسماعیل صدر مرحوم هایاصون بازه؟ ماوزه ایشون آرايشی در حاشیه خورده این هر چیزی غیر متعارفی لا تو حاشیه می نه حاشیه تو معنی می مثل رسالت در المظار خب و الارقم سم به کتاب عزمظار مزار حوال می که کتاب گرفت یا خودش جمع کرد این بعدن مذهب رو اضافه میکنه المخصوط اینطوری نوشته شده یک فقه تفریعیه یکی شافعی. از های است. از اینقدر این کتاب طبعه طبع فقه شافعی است که این حاج خلیفه از کشف و زنون نگار معروف و سنت اصلاحا کشف و به در کشف و محمد نه حسن تولسی رو شافی نمیشه چه خود تاره <تصفح> کنه شافی نه بود که همون محسوس محسوس رو میشه دست برده خیال تکه نانمیشه خصوصی از شمافه نگم از بس حالا وقت این که خاطبگی خوده حس می کنه از که شافی درش محسوسه الانیه حاله قدمتون ارسان بیم که این رو در نظر داشته باشه وقت ایشون گاهگاهی که مثلا رعی اون طبیه شافی این ذهب علمه را رو به این مناسبت در مقابل اون فقیه شافی رو گرد خلاف میشه به اجماع کرده در خلاف بعضی اینجا میگه اجماع ولیکن قال بعد از کاربنا و روا بعضی هم ام ام اما به طور کلی واجهه مطبه به اصطلاح اون چاشو کلیه پس بنابراین یکی از کارهای از که در اجماع در پیش ارس ها ما اتفاق افتاد تغیید به لحظه اجماع نبود الفاظ دیگری هم مطرح شد طبعا این بحث هم بعداً مطرح شد کاری این الفاظ چه مقدار ارزش دارند بحث دیگه این آیا ذهنه علما عنا اجماع بلاخلافه اجماع لم اجد فيه خلاف اجماع مرحوم ابن ابی الزیاد دارد اول محسنون من اصفهان مونا در محسلون مثل اصطلاح اصولی ما در معاود این ذهبت در اجماعه خب طبعا ما وقتی گفتیم اجماع خودش خیلی فوائزش روشن نیست خالی نخالی یا این الفاظش هم خیلی تأثیر چندان نداره در که از قرن پنجم نیمه های قرن پنجم سال چارزاد و که حوزه بغداد متلاشی شد به شکل و مشرف شدن دو دا حوضه هم اصلا شهر نجف تحسیز شد په مدتی مکتب هله رواجب خوبی داشت و ادهی از این خواه های مادرین وسط این شد که به, به اصطلاق اجماع رو بیارن و به سایناش عقلی گرار بودن مثل مرموم سید مرسزا خبر رو قبول نکنن اجماع ما در این فتری زمانی در این فتری زمانی برداشه دو تا کتاب داریم که فهرست منتقی بودی ما رو که خیلی داریم که فقیه هم فقیه ما آثار قیمی از مکتب هم الان تو ذهن هم نذاریم که این مثلا مکتب هم این چهار گرده در و که زاله که ما آلمال علمای میشن براشو ما الان اما از مکتب برداد مکتب مراده ما مکتب مرتضی سیر مرتد ارز کردیم سه مکتب در هست قومی ها که خبر رو میگیرن اجماع رو قبول نمی کنن امثال سید مرتضا که اجماع رو میگیرن خبر رو قبول نمی امسال امثال شیخ توسی که هرگاه رو میگیرن خوب دفت هم اجماع رو میگیرن خبر رو میگیرن بعد از مرموم شیخ توسی اونی که ما الان داریم بیشک که سایه هستن ما اجماع رو میگیرن و خبر رو نمیگیرن مثل ابن این چنته ای که من میشاسی در زمان علامه اندامشون علامه اسوات حجت اجماع میگنه و حجت خبر علامه تا سایه حدی شبیه کار که طوسی میشه از اکثر بحث رایج خوب دقت بکنید در دنیای اهل سنت بعد از سال 1560، صد بعد بحث رایجشون تدریجا حجیت خبر تعبودن شرعیت میشه به تعبد شرعی بحث رایجشون میشه بحث رایجشون این میشه این خبر حجته البته قید و قیوبی اضافه کردن از عوائد مثلا سالهای مثلا مثل, سال مثل خبر یا صحیح یا حسن قید خود این لحظه صحیح و حسن هم آیه و روایتی براش وارد نشده. از داره از اندفولات این به پلان. صحیح مثلا مرمبنای بخاری صحیح بر مرمبنای فلانی صحیح نیز. بر مرمبنای مسلم صحیح بر مرمبنای بخاری نیست. مبانیشون در معرفت حدیث صحیح اختلاف داشت. باز مبانیشون تو معرفت حدیث حسن بیشتر اختلاف داشت. شون وارد اون بحثه میشه. از سال های دیویست دیگه تقریبا یوش ها جاب و اضافه ما می در میان اهلسان نه بعد از سال دیویست تعلیف صحیح رفت میشه. شه یکی صحیح بخاریه قبل از بخاری هم داریم بعدش هم داریم صحاحه دیگه هم دارم اینشون صحیح محبان مثلا صحیح محبان هم یعنی کتب صحاحه دیگه هم دارم منحسره به کتاب بخاری تا اون چارتاشو که مح معلومان حصر بین 6 تاین از کالا اه از 6 تا باشه 5 باشه خود اون 6 تا چی باشه؟ عددیشون موق مالک اضافه کردن یعنی به جای مثلا مثل مم امسال تزییس چون سنا ابمااج تو این ها از همه زعیتر ماجه قذبینی خیلی زیتر می دیگه. هر حال عدیاعت هم, هم اققااره شد سنامه ابنمماجر من وارد بحث های اهل سنتی رو خو بهشان به ما در این زمان خوب دقت بکنید ما از قرن دوم دو شهید نداریم اصطلاح حسن نداریم چرا چون اصحاب ما به من در حد احتمال از کردم کسی هم ندیدم متنبع شده باشه من احتمال دادم چون شواهد تاریخی معیده که کلمه اصر از حدود قرن سوم شروع شده یعنی از زمان حضر سالهای دیویس این که میگن اصول تبدیل این عرض با کتاب چیه پونه توضیحش عرض کرده خب ما وجهاتا خواسته نظر خودمون یکیش اینه که شبازه نشون میده کلمه عرض که توسط خود معلف نبوده مثلا میگن حریض لبود کتاب تا عدده به اصول کتاب حریض اسمش عرض نبوده بعد هر حریض هر سال به شهست سال اون رو گفتن عرضی اینطور طور نبوده مثلا فلان لبو ارس بود نبوده که او خودش اسم کتاب کلمه ارس تعلیلی عنوان نیست که معلیف داده کلمه ارس عنوان نیست که بعد علماتی کتاب دادن من خود من کسی ها نگفته که اگر حسار نداره که مواس خود رو نه اثبات بکرسید احتمالی دادن چون با شواهده که ما داریم قدیم تنین اطلاقات ارس برمیده یعنی به حوض سالهای دیویست قدر این تاریم موردی که داریم نه قدر این مورد مثلا این کتاب حریب قبل از دیویسته قبل از فکر جوان به اون هم اصل گفته شده نه با عنوان که اصل رائش بشه در اجازات و گفته بشه برمید به حدود سال دیویست شهر جاده این لذا ما به دنبال این بحث افتادیم که چرا اصحاب ما این اصطلاح رو درست کردن اصلا ما چون اصطلاح و این اصطلاح رو درست کردن از موارد نادری که تحجیب آورم از ما چون قومیان با بغدادی هایی بی افتلاح داره. هم قمیان تأبیر به اصل و مصنف دارن هم بغدادی ها یعنی این اصطلاح در مشترک میشه در قرن چهارون هم قمیان میگذن از اصول و ها هم بغدادی ها از اصول و ها این اصطلاح یک چیزی نموید کنید اصطلاح ما خیال رو که خاص به اصطلاحه بغدادی هاست که یه مقدار اقلی گرتر نه تو قومم این اصطلاح راه شد حالا اصول رای مصنف به ذهن من میاد سال سالهای دیوی است اصطلاح اصول را مصنف ها شد در اجازات اصحاب آمد حالا شواهدش رو با جرگرد یه احتمالی که من دادم به ذهن ما رسیده چون این از نظر تاریخی معارنت با زمانی که اهل بحث بست صحیح و کرده مفرح بکن. اونا آمدن گفتن صحیح بخاری صحیح. حدیث صحیح مثلا که در اصحاب ما به جای که رو حدیث حساب بکنن کتاب که کتاب حساب کردند که اصطلاح برد به شه سنشون فهرستی اهل سنت تحلیق رجالی رو بردن یعنی به حساب روات آمدن تخصیم بندی کردن این حدیث صحیح زعیف حسنه چنین اصحاب ما به حساب کتاب مثلا کتاب حریزه کتاب معتبریه دیگه تک تک روایت رو حساب نکردن کتابیس معتبر قابل اعتماع به چه که بگن صحیح میگفتن اصلو این کتاب اصل در مقابل فرصم کتب حسین سعی چرا اونو مصنف میگفتن کتاب حسین سعی چرا؟ چرا حسین سعی مثلا تقریبا اوائل کسانیست که مثلا در یک کتاب مجموعه ای اون چی که از اصحاب ما در صلاته در یک کتاب کن کن با تو صلاتش باب و رکوع باب و سجود باب باب کن چی آمدن بگر اصحاب ما اون اصول اونهایی که تلقیه با اصول شده اونا صحیح هم این که ما چون جمع کردن یکی با حساب بکنیم قابل اعتماد هست کنم پس احط... این اصطلاح یه احتمالش رو من به ذهن آوردم که شاید که که اگر مذهبی ذناناچی خیلی خودو مقولم با نکنیم این کسی نگم ما چه حالی قرار ندارم جز بنده. یه احتمالی داریم که این اصطلاح رو علمای شیعه در طایفه ما در مقابل اصطلاح صحیح پیش اهل سنت بروردن در هر خوب دقت بکنید مسلمن چه در محتب بردان چه در محتب قوم کسانی که قبول خبر داشتن ترتعن به مسئلت آمنه رو نکردند این فقیه اصلی از خوب تر خوب تو بحث خبر ارسایی آمنه حجیت تعبودی رو باید بودن مراد از حجیت تعبودی تعبود شرعی به اصطلاح برده چند از هم حض کردن هر کسی که باید باشه اگر خبر واجد یک میاره حجه را سعب میخواد زن بیاد میخواد نه بیاد نه حجه تعبودی اصلاحان مورد من این هر خبری که واجد یک میلاس و باشه باشیم حجه میخواد اینو پیدا بکنید نکنید وسوح پیدا بکنید نکنید این که بگید بخواد پیدا بکنید نکنید مهم میاره این اسمش حجه سعب است. این مسلک آمه است علمای شیعه هم که قائل به حجر خبر مثل مقوم استاد اونا هم همین نسلتی دار. و لذا ما کرارم عرض کردیم هر کسی که در باب خبر یک میار واحد یا تو دو میار قرار بده بگه خبری که واجد این میاره این حجره اینش حجه تر بود فقط در کلمات عامه بسید یه حدی هم در چیه گفتن میار ادالت رایه خیلی مشبوره من هم خاطر این جا کن پاسه کن دنبراه درسته آه کنی محیار به صاقت راویه چند تا مسئله که ارد بکن همین که راوی سنبه بود کافی این اسمشونی هجی تعبودی و هجی تعبودی نقطه پرمیه اثباتش باید ما دلیل اشاره بیاد هر خبری که راویش آدله هجم طبعا این حجیت تعبودی هم به دو نحن تصویر میشه یکی اینکه که شاره ابتداعن بگه اهل سنت حرفشو نگیم یا شاره بوده این جا کنفازه و بنامه این قضایی یا اگر, شار، اگر شاره ابتداعن نگو لاعقل انتهاان بفرمان این حرف آها خویه آها خویی فرمان حجیت تعبودیه خبر پیش اغلا هست خبر سهن یعنی پیش اغلا اگر سر خبری گفت ولو وصول نیاده ولو زنی هم نیاده رو حجت میدونن. مگر علم به خلافیه. شاره این رو امزا کرده. اینجا امتها هم. پس گاهی ابتدا گاهی انتهاعن. مثلا محبوم صاحب و صاحب صاحبشان صاحب خیلی ندونن. مثلت صاحب و صاحب در حجت خبر هر خبری که در یکی از کتب مشهوره باشه حجته. بولم تعبودی. اون چند تا یکی دوست رواید کرده که اهمه فرموزن حالا اون رواید درست در نیستن برده بحث داره که <تصفح> پس هر کسی که قائل شد دارای یک ملاک بود ما باید اون رو به تعبود شرقی قبول کنیم یه سوش کشیم حجیت تعبودی در مقابل این اقوال دیگری هست نه دو تا قول اساسی هست در, در مقابل چیه حجیت تعبود و اغلائی. ما با شواهد جمع بکنیم وصوبه اسلام پیدا بکنیم حالا این شواهد چجوریه؟ این البته اختلافیه مثلا از این نصم نبدالرمان در شده مهمتنین شواهد مواقعه کتاب سنن شواهد کتاب سنن اصلا بابی در کتاب کافی علم و جمع داره باب و شواهد کتاب سنت. اصلا عنوان باب و کافی همین این مسئله که اینوزو ندارمان بعضی مثلا شواهد تاریخی شواهد نقلی با مثلا قومی ها معتقد بودن شواهد تلقیه به قبول پیش مشایخ باشه ولی ازا کب دفت بکنید این اینجور نیست که شما شیاز بکنید مثلا بردادی های مثل شیخ توسی که قال بحجید خبر بودن با قومی هایی که قال بحجید خبر بودن یکیه نه دو یکی دیستن یک عده شود شواهد رو بیشتر نقلی و شرعی و مثلا در قرف علماءی طارقه می یک عده شواهد رو آمتر می دونستن از کردن به طور کن. خود ما هم مثلت اون همینی توضیح بدی سه درجه شواهد داری. یکی شواهد کلیه تاریخی یا شواهد عقلی داری کسی شواهد کتاب و سنت داریم که اسم چیه شواهد اسلامی یک شواهد عقلایی بر قبول خبر داریم یک شواهد اسلامی داریم که کتاب و سنت یک کالب خاص طایفه داریم مقایسه این سه سه محور مهمه الان ایده تفسیر است یک خبر و شایعات معاصر ما فقط دین رو شواهد عربی نه دیگه به کتاب و سنت نه, نه به شواهد طایفه این صحیحه در مقامم یک مزیجی از این سه شواهد و این در شواهد طائف مقدمه اون شواهد اخیر است تو بحث حجیت خبر توضیHazard میکنه این چند مسلک تو اصل یک حجیت تعبدی شد یک حجیت عقلاقی شد با این شواهد که الان به جمالش ارکدن یک مسلک دیگر مسلک سید مرتضی شد تو بحث دیا غیر از شیخ طوسی و اون مسلک عدم حجیت اصلا گفت خبر حجیت شوالا باشه حجیت اگر شواهد بیاد حکمی که در خبر ثابت میشه نه خود خبر یعنی به عبارت دیگر خبری هم که شواهد داشته باشه اصحاب ماطلبی به قبول کردن این میشه دلیل لبی نه دلیل لفظی شواهد به مقدار اثبات و حکم با میگیرید نه به اثبات خبر چون در کلمه این کلمه تا این پر چون در کلمه دلیلی نیامده ما برای شما الان دقیقی گفتید در حقیقت سید مرتضی که منتره و جدی به این معنا شما شما ممکنه بگید خب اینا که میگن شواهد معنایی که خبر حجه نیست نه اصلا حجیت خبر یک تعبد شرعی داره یک تعبد عقدایی داره یک ادب حجیت ادب حجیت نه معناش این اسم ما دقیقاً شریعت از این دین خبر همه هم ثابت نه خبر اگر آمد کتاب اگر آمد معتبر بود اصحاب تلقیه به قبول کردن قبول می کنی. لکن لیکن حکمش قبول می کنیم نه لحظه خبر کنیم بقید پس ما یکی هم داریم عدم حجیر خبر که در به در چهرهای واضح این مطلب بقید سید مرتزان کسانی که الان گفتیم در قرن ششم و هفته و تا الاخر قرن هشتم آمدن مثل ابن زهر و ابن عزیز اینا هم مثل سید مرتزان قائل بحجیر خبر نیستن بفت میکنیم اینا دنبال شواهد هستن برای حق نه برای خدا هست شیخ توسی هم اینشالا حل میکنیم چون شیخ و بوده و مصلح بوده ایشون سعی کرده یک کاری بکنه بین مکتب قوم بغدا جمع بکنه چون این دو مکتب خیلی با هم در داشتن. شد سر مثلا مرحوم شیخ مفید خیلی نسبت به شیخ صدوق تنده و شاید در فهرست منتجودی از خاندان باباوایی صدوق شاید حدود 20 نفر 19 نفر 20 نفر ایشون اسم داره در فهرست فهرستمون شاید یکم بیشتر در... تقریبا ذهنم 22 تا نفر دیدم هیچ کدوم اینها پیش شیخ مفید درس نخوندن اکثرشون پیش شیخ طوسی درس خوندن یک نفر ما نگیم از خاندان باباوایی شیخ مفید درس خوندن میشه کسی درس خوندن پیش شیخ لذا من همه شیخ با این تفکر که بیاید یک جمعی بین مکتب قوم و بغدار بکنه این شما تو وقت وجود خبر اون داری اجماعی که میکنه وجود خبر در حقیقت یک نوع محاوله و کوشی از شیخ برای جمع بین دو بغدار و به نظر ما هم در کتاب خلاف همین این کاره کرده وقتی که دلیل نه اجماع و فرقه به اخبار هم به نظر ما چون کسی نایدن فرقه شده باشه اجمال فرقه یعنی مکتب برداد اخبارها مکتب قوم و تا یه حدی هم حد اجمالاً شیخ موفر رو ها نمی کنم بگم اما ایمیان نه موفر نست انصافا وین مکتب قوم و برداد فرم هم در مکتب برداد که که قائل حجت خبر به نای بودن به شواهد بودن نسل خود شیخ دوزی شاید تا حدی هم بشه که شیخ مفید چون سیدوانزا کاملا واضحه اما شیخ توستی که خب ابهام داره شیخ مفید هم شده همینطور باشه اما قومیه ها هم به شواره اما فرق بین شواره بود بین بردار نخود پس یک نفتر رو خوب دقت بکنیم ما در میان قدم اصحاب ما حجیت خبر تعبدی به معنای که پیش اهل سمنت بود نداریم اینها از عجایب کار انسان‌ها بود و از عجایب مثل ابن فضل و رحمه الله واقعا شخص بسیار بزرگی است حقش داده نشده فضل النشازان مثل فضل النشازان این فضل النشازان یک تبهر عجیبی هم در احادیث اهل سنت داره و آشنایی با مسالک اونها در خبره فور از اده یعنی انسان واقعا وقتی نگاه میکنه باید بگی مثلا در بعضی ها در اداده مثل بخاریه هم دوره بخاری هم هست بخاری دیز و دیز 260 هست. استاد مشترکم داره. باز از مشایخی بخار خیلی درس خوردن، بیشتر ما درس خوردن. البته شرطش شیعه بودی شناختش بخاری گرد خودشه. این خیلی عجیبه. بخاری در نشازان، در مثلا در همین کتاب بیراث در جلد 9 تنزیل، ادعی از موارد از کلمات فرض شازان نه. فرض نشازا رفت با صحبت میکنه مثل اون که خبر وارد میشه، این سندهای ضعیفه این سنه جللانیش اون لمیع و ان فلان از بود اینجا مبسوره دیگه مقتوع از این حرفایی که خود سنی‌ها دارن اینا دادن وقتی معاصر بخاری امو اکثر در یک موردی یک اسمو در باب اولو تاثیر نمیخورد کشن بخاری حدیث رو فزلان فزلان شازان اون حدیثو آورده ولی معاصر فضل نشاذان فضل نشاذان یه اشکال در عالمه اهل سنت اون حدیثه آره خودشون حدیث زاد پسر تابوس طاووس شده از تابوس یمنی بعد تضع مشازون بو اشکال میکنه خیلی عجیبه بو اون حدیث اوورده فرض میاره و اشکال میکنه که این یعنی اندازه سندی اشکال داره خب پیش اند سنت بخاری ام... اول یه حرف اوله بخاری میزنه بعد در قرن های بعد حتی در این فقه ال باری نمشی شده اعتراض شده به بخاری که این راهی که ایشون میگه در حدیث درست نیست اشکال میکنه خود سونیا اشکال میکنه اون اشکالی که سونیا به بخاید من بینه اشکال فرد در اون عجیبه یعنی باید فرد رو معاصر بخاید این طوری که مثلا میگه اشکال رو بعد در کلمات و بعدی ها دیده یعنی یک نفری که بیاد در وارد احادیث اهل سنت بشه از معیارهای اونها و اشکال میکنه. به مثل بخاری که بعد بزرگان حرفشون نکنید. اشکال قطعی میگن فرزوگداریش کرد. متصل واره. اونا تا که ما فرزو میشوازد میگویند فرزو نهیم فرزو میشوازند خودشون داره غیر شدن میشوازند ما. ما فرزو میشوازند داریم. خودشون رو عالم کن و خودشون اشکال اون اشکالی که ناتو عالم و خودشون کرده دینش کلامات فرزو. تو ما تو تو بخاری هم. خیلی اونا اونفیقات داره اولو تاثیر که گه از مساله خلافی بین شیعه و سنی خیلی واقعا تعجبام همین فرید النشازان وقتی به کتبشون فرید النشازان یکی از راویان مهم کتب عمر هست مهمترین کاری که فرید النشازان داره نسخ بسیار خوبی از روا به ابن نبی عمر و یونس و از اینها عظیم داره ایشون واقعا مرد بزرگ فوق العاده هستن سوفا فرید النشازان جزء نقادر و خیلی ایشون مساله عقلیام خوب وارد می‌شید. ببینید شما مسأله 260 در اون زبان فرق دین مسئله اشتوارنغ، نه، مسئله نهی در عبادت، مثلا شما الان تو اصول می‌خوید که فرق بین دو مسئله چیه؟ در 260 شما متعرضه، رساله‌ش موضوع تو کلاسی موجوده. ایشون یه میاد می‌ذاره به مسئله نهی در عبادت. در, در, در نهی در عبادت, نه عبادت ملتزم به فساد میشه. و بین مسئله اجتماع نه در اونجا ملتزه به اجتماع هم میشون که درست در داره قصی درست در دیویست و یعنی واقعا مثلا این تفکر و اصول همهی و اصولی رو ما در شیخ توسی که دیویست سال بردازشون نمیدیم اون مجرد تفکر عقلانی ایشان و اصولی ایشان رو در شخصیت بزرگی مثل شیخ توسی که دیویست سال بردازشون هست اونجا ساد و خب فرز رو براتون روشنبه عجیبه فرز تور روایات اما میاد مثل مستقباز عجیبه میره دنبال همون اصول و همون قوائدی که ما داریم تور روایت اهل سنت نمیست اولا فکر میکنه دقیقا همون را یعنی فرز با این که منطلع بوده با اصطلاحات حدیثی چه عجیبه منطلع با که بالای اصطلاحات حدیثی اهل سنت نمیاد خلقش بکنه باشیه یعنی کاملا دو محور رو از هم جدا میگیره وقتی با سونیا صحبت میکنه این همون همون همون سنی و سند و فلان و اوضاع و اح... همون حقای کنان میدن و جد تر میاد توی شیعه مثل محافظ میکنه خیلی همینه این ای کار خیلی عجیب فضل میشه آسان یعنی معلوم میشه اون تفکر ایشان بود وقتی این کار متاسفانه شیخ توسی شروع میکنه به حجیه چه که توی شهر هودیات و از زمان شهر نصفان اوهام از زمان شهر 420 که شهر مطرح میکنه دیگه این مسئله هی اوج کراز و فروت داره تا الان شدی وقتمون شد الان دیگه که رسمان تعبدی خبر رو مطرح میکنه پس اشکال کار در الان وقت کجاست؟ اما از هودیات تعبودی خاله راسته با اون ذرات خبر امامی باشه، عادی باشه، توصیه باشه. تاریخ سعید این, این تعریف سعیدی که علامه قید تاریخ سعیدی که بخاریه مثلاً. از دیگر جگان علامه نه، استلهات. اندیمه بعد از بزرگان ما متفاوتند. داره گشت اشتباهات عجیب شدنی. شدنی. و که تو از سونیار رد کردند که آشما هم می‌دونیم که اصطلاحات رو علامه اشتباه نشه. خیلی اصطلاح صحیح علامه این بود پس از زمان علامه این تحول در اصول ما چی شد؟ حجیه تحولی خبره. این کار رو که علامه کرد تا هنوز موزای ما تأثیر داره صحیحه پیش اونها مراد یعنی مقبول شیخ صدوق شیخ صدوق در چند جا توی الشرایع هم داریم و حالا حدیث اون صحیحه تصدیق مهمه. باقی این حدیث سندش از سنن میاز آغاجم باب ابوهره منتسب میشه رسول الله هیچ احتمال صحتش نیست. ای علاو الشرایع یک بابی بابیسون که چرا انسان مستحب به سر سر روز سه روز سیزدهم و چهاردهم پونزتی که آدام توبه کرد در روزی که توبه کرد روزه گرفت یک ثواب و در صورتش سفید شد. این روایت شیخ صدوق میاره شون تحلیل داره بعضی ها با حدیث صحیحا تصحیح میکنه غالبا جواد محمد یه دیدگاه هم داره که قطعاً اون حدیث صحیح نیستن که احتمالاً بگه حدیثی که در آورده مشاهی رو اخرش اون مورد میشه بر ابوعبره رسول الله اصطلاح صحیح در اونجا یعنی مقبول اونی که من باش عمل میکنم مقبول دارم غیر از این اصطلاح مهم اصطلاحات هم با هم چون بعضی از این که بله ما این که میان اصطلاحات ها. علام درست در ورده درست نیست چون در کلمات در هم کلمه صحیح میدیدیم ملت فبیر نشده هست چون این تمیز, تمیز ما بینه فوقش به اصلا بخویم تحویل بکنیم مراد اصطایی در کلمات شیخ صدو اون معنای دومه حجیت خبر با شواهد وقت مرادش از شواهد یعنی شواهد مجموعه شواهدی که از کتاب و سنت و کلمات فوقاها و تلقیه و قبول و هر مضمونه و بد نیست و قابل این مراد اینه نه صحیح تعبدی شرقی اعلام این کار کرد پس ما در فقه شیعه و اصول شیعه همراه اجماع با خبر این مشکل و زمان علامه پیدا کردیم و از خوب تحلیل نشده اینی که مرمون دیوز از کلم بس مرhum الله محمد امین است و نوشته روزی که شیعه زد و خورد داشت یک روز سریجیک یا موزیک ابلامین است ولی آنطور که این بین بی مان است راسته یک اجماع مثل بشر نه این فلک که شیء زد. تا اون زمان ما حجیت ثابت بودی بین مان آن نداشتیم. بلکه که بعد اصلا مثل ابن زهره مثل مرhum ابن علی تمام حجیت رو اجماع می‌گوید، هم در خبری هست و هم یه دفعه علامه بحث رو عوض کرد حجیت و هم نشد چون حجیت, حجیت با شبارد هم نشد حجیت تعبولی شد وقت در حجیت چون وقتمون شده لیست و فهر سوار رو از آمد... دو پنند قسم... چهار قسم کرد خبر رو دو قسمش قبول کردی خبر صحیح حجیت مطلق که خبر حسن حجت محل حسن شرف مشروط بعد از انداره یواشواش را افتاد مخصوصا مداره یکی از اوجه تضایه های صحیح مدارده من بسید تا زمان ما آسرین ما قالبا هجیت دوم را قائلن یعنی با شواهد مثل من اون نایینی مثل اون آزیا مثل همون شیخ انصاری. اینا قالبا هجیت با شواهد قائلن آه خوبی نه ایشون باز برگیزن با هجیت عبدی لیکن ایشون خبر سحیح نه خبر سقه هجیت عبدی رو به خبری که کل رواتش عد و امامی و موسطق باشن اتا مرمومه صاحب مدارک موسطق به توسیقین هم باشن توسیق واحد حالا آقا خوبی توسیق واحد هم کافی میزنن. اون آقا اصلا توسیقین هم میخواد دیگه از بعد از علامه مرکتال آرا حدیث و هست که این تو بحث آیده مونه تا اینجا اجمالا روشن بشه تا دارتون بحث آیده سالالله علاقه